اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله در دوم که هنوز نتیجهش اعلام نکردیم و عقوال رو مطرح شدیم احتمالات رو این بود که اگر دافع بگه این مال به عنوان رشوه بوده یا اجری مخبرنه بوده و قاضی یا قاضی بگه خیر این مال به عنوان هدیه صحیحه بوده از کردیم احتمالات همین هست و توضیح اون احتمالات رو هم عرض کردیم و خلاصش به این شد که ما باشیم و به حسب ظاهر دوتا اصل متناقض داریم میشن اصالت عدم و کونه صحیحه و اسالات عدم و کونه ها و طبعا نتیجهشون فرم میکنه بنابرای اینکه هبه صحیح نباشه زامنه و بنابرای اینکه رشوه محرمه نباشه زامن نیست نتیجهش فرم میکنه از کلیم به لحاظ فنی در مثل این موارد علمای ما ترتیب برای اجرا اصول یا قوائد یک ترتیب خاصی رو، تنظیم خاصی رو ملحوظ کردن. در درجه اول، اگر قواعدی باشه که به اصطلاح اندزیو بالا بالادست میگی، بالاتر از اینها باشه به او رجوع می کنند. از اس کریم بالادست این دوتا تا زمانه. اگر ثابت بشه که شارع مقدس اصل اولیه در هر ید رو زمان قرار داده، یعنی هر کسی که هر چیزی گیره اصل اولی ضامن باشه، این اختضا میکنه که این آقا زامن باشه و موافق میشه با اصالت و عدم و کونی حبتاً صحیحه با این اصل موافق میشه و حق به طرف اون مدعی میشه یعنی اون کسی که میگه رشوه است. این یک اصل بالا دست باز بالای این یک اصل دیگری قرار داره که اصالتو سه هست اون اگر اصالتو سه جاری بشه باز از این نه اون دو تا اصی جاری میشه نه قاعده زمان جاری میشه و اون اصالت و صحیح بی فعل غیره که آیا تصرف قاضی صحیح بوده یا نبوده اصالت و صحیح حکم میکنه که تصرف ایشون صحیح بوده پس هر با ایشان است و هبه میشه هبهی صحیحه و ایشان زامن نیست اون ترتیب بندی که در اصول فعلی شیعه آمده و حرف شیعی نیست اصولی متأخر ما من حیث المجموع نهال دانه دانه من تحلیلات بسیار خوبی رو در این تنظیم و ترتیب و انجام دادن که چه اصلی جاری میشه چه اصلی جاری نمیشه این هم بسیار مطلب است که اگر اساط و فی فیر جاری بشه این به اسطلاح حاکم و تمام اون سه اصلیش میشه و اگر فرض کردیم اساط و سهه رو جهتی جاری نشد مثلا بگیم دلیلش لبیست و اینجایی که اصل هبه بودن مشخص نیست، احراز نشده، اساس صحت جاری نمیشه. اصل عرض باید احراز بشه، یعنی ثابت بشه که هبه بوده، اون وقت اساس صحت جاری کرده. اگه اساس صحت جاری نشود، نوبتی مسئله قواعد زمان. اگر گفتیم قاعده زمان هم در مذهب جاری نمیشه به خاطر اینکه یا قاعده زمان ثابت نیست، علویت ماخردت ثابت نیست، یا برفرض هم ثابت بشه، شبهات مصداقی مخصص نمیتونیم در شواهد مستداری مخصص به آم مراجعه کنیم پس این اصلا هم انداختیم. شد اون دوتا اصل اصالات عدم که اونها و عدم که اونها حیبتاً صحیحه اگر گفتیم این دوتا اصلا متعارزن نتونستیم جاری بکنیم برمیگرده به اصل بعدی اصل بعدی به تعبیر مرحوم آی روانی از استصحاب بقا المال علامه که مالکه اول اونو استصحاب میکنیم این استثاب به درد این قسمت میخوره که اگر اینم مثلا یه ماشین رو بهشون داده اگر ماشین موجوده باید برگرده این نتیجه استثاب اینا حالا اگر تلف شده دیگه اینجا چی استثاب اثبات زمان میکنه میگه نه دیگه استثاب به درد زمان نمیکنه اگر در تلف شده باشه این دیگه این استثابم به درد نمیخوره بعد میگردیم به آخرین اصل عملی خودمون که اصلا تول اصل اصول شیوه اصول رو تقریبا شبیه به چشمدی و شامل مبادی شده. این اصول رو چجور این علما مرتب کردن؟ پس اصل اولی از این طرف اصالت و عدم کونه به طور صحیح از طرف دافع و از طرف قاضی اساس عدم کونه را شیوه. برمیگردیم به اصل بالاتر اسالت زمان. برمیگردیم به اصل بالاتر اصالت و صحت. اگر این اصل بالاتر رو نتونستیم قبول بکنیم که شبادش از کردیم خود دو تا اصل هم متعارف باز بازیم اصل پایین تر عادتا مراد ما از اصل پایین تر است که در ناهی حکم جاری میشه نه در ناهی موضوع اون اصول در ناهی موضوع بود اصولی که در ناهی حکم جاری میشه مراد از حکمی و نهنفی حکم وضعیه اصالت و بقا استصاب بقا ملک علا ملک مالکه به ا لیکن این استصاب فقط به درد رد دلعه این میخوره که اگر این موجود رد میکن به قاضی ماشین رد کن به صاحب شد اما اگر این طلب شده باشه اثبات زمان نمیکنه خیلی لطیفه این ترتیب و اصول رو خیلی واضح و اگر اثبات زمان نکرد شک کردیم در اینجا نوبت میرسه آخر لعن به اساطور برایه کما این که اگر گفتیم به اصول بعدی بر نمی گردیم این در که ما به اصول بعدی برگردیم مثلا بگیم به اصول بعدی استاحصاب بقا ملرک بر نمی گردیم چرا بر نمی گردیم؟ به خاطر اینکه این یقینا خودش از دست خودش خارج کرده از ملکش فقط خودش من به لحنده رششته به این آقا دادم ولو خودش داده دادن, دادن. که سر خودش بوده شاره امضا نکردیم این دادنوللو داده اون آقا میگه نه دادن این داده که شاره امضا کرده. از اصل این شاید دیگه عرفی نباشه که ما استثاب بقا امرک بکنیم وقت این نتیجه چی میشه؟ که این اصل به اصطلاح پش... زیر هم جاری نشه در نتیجه بگیم مقام مقام تدائی میشه هر دو مدعی و منکر هستن احتمالات مسئله فکر میکنم باشن شد اگر اصل بالا دستی و پایین دستی بعدی رو هم جاری نکردیم تدائی میشه نتیجه هر دو مدعی و منکر هست. اینم حلقه سیگه از, از راهها حالا نتیجه نهایی رو برمنه عزیران خدمتتون تا اینجا مسئله باشه منو استاد اینجا در اساتصحه اشکال کردن برنا خب چون اساتصحه دلیل من کلام استاد دین شهری دیدیم بعد برگردیم به اون تحلیل خود مسئله ایشون هم اساتصحه یک اصل است که به اصطلاح به سیره و اجماع ثابت شده و در این لبیز ما نحنافی رو نمیگیره خب طبعا ادم گفتن نه میگیره چه اشکال داره دلیل نداره که باید هستن عقد مسلم باشه شکل از صحتش باشه ارز کنم حضوره با سعادت شما اشکال مرحوم استاد در این جرده که این دری این لبیست شمولش برای ما نحن روشن نیست اشکال دیگر این بود که اساس سهه اصلا اثبات صحت معامله نمی کنه اساس سهه فقط و فقط ناظره به مسئله این که طرف مرتکب و حرام نشده بیش از این دیگه از اساس سهه در نمیده اصطلاحology به چون اساطه در اینجا پیش کشیده شد یه توضیح ارز بکنم مرحوم استاد دلیل اساطه سحر رو سیره و اجماع گرفته چون عزم کردم روایاتی که داریم مثل ضعف الیخی که اعلی احسنه این توش در نمیاد صحت همه ایشون اعتقادشونه که یک سیره اوغلایی جاری است و یک اجماع هم از متفقه و از متشرعه از فقها بر اینکه به این سیره اعتماد بکنن چون شارهم از این فقها در کتاب قواعد مرحوم استاد ما قواد ایشان اجماع رو خطشه میکنه میگه اجماع تعبدی نیست در اینجا اجماع هم منشعش همین سیره است یعنی علما و فوقها نه به عنوان اینکه که تلقی و از محسوم کردن چی این چیزی گفتن همین سیره و وقلهایی رو بزن شاره نکرده لذا عمل کردن من یه توضیحی رو سابقاً از خردم کرارن و مرارن و اشکال مختلفه ببینید ما یک کلامی رو که با عنوان تعبد میخوایم بیاریم و مطرح بکنیم رازش اینه رمزش اینه باید اون درش یه چیزی باشه که ما ندانیم اون قسمتی رو که نمیدانیم و مجبوله بگیم آقا تقلی... ت... تعبدن قبول کردیم این اسمش تعبده مثلاً فرس بیمون مثال یک مثالی سوی کن بارم ارز کردم مرهوم شیخ تو راجی به طلحت نزد نجاشی نداره میگه آمیان الا ال کتابه مؤتمنه خب اینو آمدن گفتم که این کتابه ها مؤتمنه ها توثیقه چون می نمیشه کتاب اصلا واثمت باشه اصلا اگر مرال شیخ طوسی این معنا باشه راست چون ما واقعا نمیدونیم آیشون سغه است یا نه این نقطه برای ما مشقول اصلا رمز تعبد رو به شما بگم این نقطه برای ما مجهوله شیخ میفرما نه من خبر میدم که بین اصحاب ما کتابی جان معتمده. حالا اون تلازم هست یا نه اون بحث است. طبق تلازم پس این عام سقر است حالا اون بحث تلازم شدیم کجا خیلی باز میشه لکن ما عرض کردیم یک احتمال دیگه در اباظه شیخ توسی این باشه که این شخص اگر چه امام نیست روایاتش در کتب اصحاب ما هست دقیقاً اگر مراد شیخ طوسی این باشه این تعبدی نیست که او خود ما مراجعه کنیم ببینیم <تصفح> دیگه تعبدی که خیلی دقت کنید کلمات بزرگان رو وقتی می خواهید یک جایی تعبد بگیرین و یک جایی غیر تعبد اون مرزه ها شوشن بشه اگر مراد شیخ توسی این باشه که آها شما مراجعه بکنیم به روایات به کتب اصحاب بله در کافی هست در فقیه هست در کتب فراوانی هست پس این که میگه کتب شد کتابه ها معتمدون یعنی اصحاب نقل کردن خب مطلب بیرم که شیخ فراوان ما هم میبینیم بله در ک در کتاب فقیه هست معنیش این دو کتاب هر دو گزینشی هستند چند بار عرض یعنی فقیه و کافی روایات رو پشت سر هم نآورده روایتاتی که بهشون اعتماد دارن آورده اختیار کردن گزینشیه کتاب و استفصال گزینشی نیست اما کتاب کافی و فقیه گزینشیه راسته از کتاب هم معتمدو یعنی مرحوم کلینی مرحوم صدوق اصحاب دیگه ما رو این کتاب اعتماد کردن اعتماد کنید یعنی چیه؟ نه باید خب اینا ما میبینی. پس کلام شیخ برای ما مطلب جدید هن شما که شیخ تعبدن وجود خودیم چرا نقطه ای اگه نقطه خاصی داره اینو خوب دقت بکنید اجماع خوب تعمل به قناعه اجما رو برنامه که حالا از اول چی بوده چی شده برنامه رو کار ندارم اونی که تقریبا بنا شده از قرن تربست شاهارون اوائل درن شاور اوواخر سده و معدن شاور مثلا تو بردار اجماع به عنوانی که از ادله مطرح بشه به این معنا که مقداری از اتفاق علما که از کشف از قول امام باشه ذکر شد اجماع در فقه اول به عنوان مدرک مصدر تشریع معرفی شده بعدها هم ایده قبول کردن دی قبول نکردن ادره یا مثل شیعه معترض شدن اجماع رو به عنوان مستر تشریح نیمیش داشتن طریق قبول میکنن یعنی چی؟ گفتن اگر اجماع صحابه باشه قبول صحابه فتوا بدن در این مطلع اجماع بکن قبول چرا؟ چون صحابه اتفاق نمیکنن مگر به اصول رسول الله از قول صحابه به رسول الله میرسن شیعه هم در قرم چهارم همین رأی رو در این رأیم در قرم چه داود ابن علی اسحوانی و اتباع ایشان مثل ابن حزم مطرح شده شیعه هم همین را ایغا کردن فقها گفتن صحابه آن رسول الله شیعه گفتن فقها آن ام امام سرشون این شد و لذا برنامه‌شون این شد خوب دقت می‌کنید یک نحو اجمالی تعبدی خواهد بود خوب دقت کنید اجماعی که توچ راز رنج باشه بگیم بعید فقهای ما با های مختلف این فتوار داده باشن مگر اینکه مطلبی از امام دستشون لذا استداحی شده مثل مرحوم ناینی میفرماده اگر اجماع مدرکی یا محتمل مدرکیه باشه بهش عمل نیم کنی. اعتبار ندار این نکته شریمه چون اگر مدرکی یا محتمل مدرکیه شد از اون حالت راز خارج میشه اجبا وقتی مدرکی نبود اگر یک روایت ظریف بود خوب به روایت ظریف عمل کرده. اگر این احتمال آمد دیگه هم رجال و نه رجال ما نگاه کنیم براد عمل بکنیم نه اما اگر فرض کنیم روایتی نبود مدرکی نبود و معذالی که اتفاق کردن با اختلاف سلیقه‌ای که دارند از این کشف میکنیم قول امام لذا اجماع در بین شیعه نه اون اصطلاحی است که بین اهل سنت اجماع بین شیعه به خاطر اینکه یک نوحجی از نوحجیات تاریخی اینا مستقر شده. جزء طرق و امارات این اجماع باید دارای یک صفتی باشه. مشروعیه نقل اقوال به گونه ای باشه، به صفتی باشه که ما مثلا قسمت‌هایش رازآرنگ باشه، روشن نباشه، تعبث پیدا کنیم که قول امام اما اگر ریشه های اجماع معلومه اول اجماع رو شیخ گفته قبل از شیخ کسی نگفته شیخ هم به خاطر رازد ظریف گفته بعد از شیخ هم به خاطر شیخ گفته، اون راز رنج نداره که تا مرحوم آربوشودی هم می‌فرماوند که این اجماعی که در مقام هست به خاطر همین سیره اوغلایی است و به عبارت دیگر اتفاق علما ناشی از یک قرینه تعبدی نیست علمای ما به عنوان اغلا به این احسی رسیدن نه به عنوان علما و فقهای های مذهب خاص که قول امام ازش کرد ولیذا اگر نکته این شد دیگه در اینجا اون جنبه به تعبدی اجماع از به میره اجماع فقه مثل ما،, ما مثل ما چیز خاصی نبوده دیدم مردم یکی از سیر اغلایشون که معاملات همدیگه رو صحیح میدونن این کار در حدود 260 سال مذهب از, از پیغمبر 250 سال بعد از پیغمبر یعنی ظاهری و دو... 20 سال هم مثلا پیغمبر این کار شده این کاری هم نمیده که بعدها پیدا شده این کار بوده و ردی ازش نشد پس در اینجا خود دقت بکنید اینا میخوان سعیشون این باشه که ما به جای هیج به اجماع و به دلایل تعبدی و به دلایل مجهول و رازدار و رمزدار اون رو رمزگشایی میکنن نه در این جلسات اون شهیدسانی شهید اول الا مثل ما, ما مثل اونها اونها میشدن اونها هم این سیره اوغلای زیر ما هم دیدی گفتن این سیره خیلی قویه تو زندگی ما میفهمیم اونام هم گفتن پش شاره امضا کرده رد نکردن کافیه برای امضا ما میفهمیم چیز خاصی نیست که ما بیام رو اجماع برایش یک پرونده خاصی باز بکنیم رضا استاد اجماع رو برداشتن آی بجوردی سیره اجازه گذاشتن و اگر این کار نشه لزوم اختلال نظام ایشون بجای اجماع و سیره سیره و لزوم اختلال نظام رو مطرح می‌کنه من سیره اینجا دادن بحث لطیفه حالا چون اینجوری پیش کشیده شده و خیلی‌ها نشقال کردن و بعضیان با جواب دادن ما ببینیم اجازه این, این بحث رو باز از این زاویه بررسی بکنیم حالا زاویه مفصل جای خودش اما حالا و اون اینکه اصولاً در سیره ما چجوری حجیه رو میفهمیم. یک مشکل هم اونجاست باید در سیره اغلا حالا اون اجمار اجای به سیره دادیم در سیره اصولاً چجوریه ما حالا غیر از ما مثال دیگه هم می چند تا احتمال اونجا عرض می کنن تو اون احتمالات بیاین توی ما هم تصویر بخونیم فرض کنیم مثلاً مرحوم استاد آیخویی قال هستن که سیره اغلا خبر در یعنی اگر شخص سره مطلبی رو نقل کرد ما ولو اطمینان پیدا نکنیم ولو وسوح پیدا نکنیم تعبودن باید عبود بفتن یعنی ولو مقداری از کلامش راز و رمز داره ما یک سیره داریم درباره باره یه سیره و نقشی که ما داریم و میفهمیم و بررسی میکنیم مجموعه ای که انسان احتمال میده و در بعضی کلام هاتم دیگه میشه چند احتماله یک ما بگیم بگیم سیره یه امر مجهول مبهمه مثل تعبودیه راز و هم نمیفهمی. نقش ما هم در مقابل او یک نقش انفعالی است و در نتیجه هم این سیره سی، سیره ها رو ارجاعش بدیم به امر اغلایی مثل احکام عقلی می مثل قبه ظلم بگیم این سیر امامر امور ثابتی هستن نسبی هم نیستن مطلق هم هستن ثابتن متغیر نیستن نسبی نیستن مطلقن متغیر نیستن ثابتن و در تمام جوامع بشری در تمام اجتماعات بشری هند و سر دو شرق و غرب و شمال و جنوب و قطب شمال و هر چیزی که در بشر باشه این یک سیره اوغلا این نکتهش هم روشن نیست یک نوع تعبد ما به این سیره پیدا این یک تفکر تفکر دوم این که نه این سیره اوغلائی دارای تعب... نکته خاص خودشون هستن و این نکته رو در مقام تفسیر برگردونیم به یک نکته درونی یعنی بگیم یک چیزی در واقع خود خبر سقه هست که او منشه این سیر شده مثلا در خسرت درونی و ذاتی خبر سقه وساقت راویه وساقت قادم ببین منشأ این حجیت زهوب منشأ حجیت خبر ثقه وثاقت خود این وثاقت راوی این سیره رو درست کرده خب دقت بکن امر خارجی هم نیست این هم در نتیجه مثل همون قول اول میشه یعنی این حجیت رو به نحو ثابت نه متغیر به نحو مطلق نه نسبی چرا چون وثاقت همه جا هست این نقطه درونی این خصلت درونی در همه جای دنیا هست یک راوی سغث توه میکنه حالا میخواد احکام به شما بگه میخواد موظع خارجی بگه میخواد جنگ نرا بکنه میخواد بگه مثلا در اروپا چی گذشت تو لبنان چی گذشت تو ایران هر جور بخواد فهم نمیکنه اون وصابت راوی در تمامی این موارد وجود داره پس سیره اینطور نیست که ما نفهمیم میفهمیم در وجع اول گفت نمیفهمیم در وجع دوم میگه سیره میفهمیم و اون نکته ای که من میشه عبارت از وساقت راویز البته وساقت راوی چرا اون دیگه باز مکنه؟ اون ابهام داره. این احتمال دوم، ما یه تحلیل علمی میخوایم برای کلام کسانی که میگن خبر سر به سیره حجره د قفر احتمال سوم بگیم بله نکتش همون نکته وساقت هست، لیکن نه به معنای وساقت خودش به ماهیه هیه چون وساقت راوی منشأ وسوق میشه اون نکته این که خبر واحد روش حجت میکنه اون وسوقیست که پیدا میشه وقتی طرف سقه بود شما 90% میگید که این مطلب با واقعه پس بنابراین دیگه ما حالت انفعالی نداریم نکته برای ما روشن میشه اون نکته هم در اصلش ذاتی و درونیه لاکن حقیقتش اون نیست حقیقتش عبارت از اون نقطه دیگر که وسوخه پس ما به دنبال وسوخ هستیم اگر این شد این یک مقداری کار رو مشکل میکنه چون گاهگاهی ممکن است خبر سقه باشه اما وسوخ نیاد مثلا کسی آمده یک خبر رو از تهران نهار کنی با تهران و این محلاتی که گفتی آشنایی مطلب جور در نمیاد. آن دوسته نفرم قیل سقیق نه خلاف رو نهاره کردن که در حد مقاومت تعارض نیست بگید من به خبر شما وسوق ندارم در نتیجه ممکن از این نتیجه گیری کنید که در اینجا اغلاب خبر سقیق در این حالت عمل نمی کنه. اگر یک شواهد خلاف وسوق بیان لکن نه در حد هجی به حدی که وسوق پیدا نشه احتمالا کسانی که قائل هستند، مثل مرمون اینا از این راه وارد میشن مثل مرمون استاد از راه وسطی میگه خود وثاقت ما کار به وسوق نداریم مرمون که بله وثاقت وسوق میاره اما اگر جایی وسوق نیامد اون جرد جردی از جا مثلا خبری صحیح زرارت نکرده، اما معارض هم داره معارض در حقیقی مثلا فتحا نهند اصحاب آج میشه خبر سعی در کافی هم هست یا در تحضیح هم هست اصحاب فتحا نهند خودشیخ فتحا نهند خودشیخ حدیث رو برده فتحا نهند بعدی این قطعاً اون رسول به کرد میکنه البته حقیقت حجیه تعبدی خبر سقم همینجاست نقطه حقیقی چنده این تحلیل شوی شما گفتن کسانی که میگن ما خبر سقر حجت میدیدیم به سیره اقلائی میگن ما فقط کار به وساقت داریم میخواد وسوخ پیدا بشه میخواد نشه این مقناه دوباره اون یا حتی ممکنه آرخوی مقناه اول باشه نسبت نمیدم چون این تحلیله ممکن است مثلا در ذهنه باشه دکه اونی که ما بیشتر نظرانه نظرانه بارکشون بیشتر به دوباره کسانی که این مقناه رو میدن اما نظر مثل مرحوم نایینی مبنای سومه فقط وساقت راوی نیست. باید وسوق به مطلب پیدا بکنید. این مبنای ثبوت روشن شد برای میگه وساقت وسوق میاره. اما اگر جایی وسوق نه دیگه ما او عمل نمی کنی. این چند تا شد؟ سه تا. این مبنا خسارس مبنای اول با این دوتا مبنای اخیر در این است. در مبنای اول دور ما انفعالیه. نقش ما انفعالیه. میگیم نمیدونیم. سیره اغلا هست. ما خبر ما که ما اغلا خارج یه خارج گروهی هم. ما از انا خارجی اما مبنای دوم و سوم بر این اساسه که نقش ما نقش فعلیه. فعل ونهای فلسفی. نه ف... نقش انفعالی. مراده از اغلا هم یک جامعه نیست جدای از ما. یا مثلا 200 تا امثال شیخ و رئیس ابن سینا و و فلاسفه که همش اینجوریه اوغلا از اوغلا ماها هم مردم عادی همین مردم کوچه‌ها و, کوچه و بازار همین بقال و عطار و قصاب و ماها خودمون ما. کسی نیست خارج از ما خود ماها هستیم اوغلا یعنی ماها نقش ما در اینجا نقش فعلیه نه نقش انفعالی چیزی نیست که ما از دیگری نقش بکنیم خودمون می‌بینیم تو زندگیمون این تفسیر یعنی مراده از اوغلا هم یک چیزی خارج از ما یک که شما بیاین ببینید مثلا مثل ببین فلان روایت مال زراره هست یا نه نه سیر اوغلایی ای طبیعتش اینه البته اینه که اوغلا در خارج از اوغلا هم مرادشون احمق و خلو و سفیه و نادان و شیرینعنق و مثلا اینا نه اینکه مثلا فرض کنید مراد از اوغلا در اینجا ای دست خلاسفه مثلا شده هست خود ما تو زندگی عادی تو همین زندگی که داریم امور عرفی اجتماعی خودمون پس بنابر تفسیر دوم و سوم نقش ما نقش انفعالی نیست نقش کاشف نیست ما خودمون جزش هستیم مثل تو حجت ظهوران اصلا قوام حجت ظهوران ما جزشیم میگم آب من یک برادر تفسیر می کنم شما هم اون معنا رو میفهمیم. و شما میگین که من این معنا رو اراده کردم دقت بکنید و منم میفهمم که شما اینو میفهمید یعنی در استعمال لفظ آب چهار تا حالت هست تفیم و تفهم از دو طرح هم. من قسم این مایه خاص بود شما هم قصد من هم مایه خاص و شما هم میگین فلانی قصد کرد من هم میگم که ایشون اینه فهمید در حجیت ظهورات و حجیت ظهورات برای ما خیلی واضح اجتماعیه این سیار و اغلایی هم همیتونه ایش فهم نمی کنه هم مثل خبر واقع. پس بنابراین اینجا سه تا مبنه روشن شد مبنه چهارم، بگیم این سیره اغلاییه که تشکیل میشه و ما میفهمیم جزی از او هستیم این نه به خاطر یک امر ذاتی و درونیه دقیق بکنیم این به خاطر یک امر خارجی حسودم این سیره اغلاییه به خاطر وساقت راوی نیست این به خاطر اینه که یک امر خارجی است اون امر خارجی چیه مثلا لزوم اسرهرج از اون شدیدترش لزوم اختلال نظام نه اینکه خبر سقه به عنوان وثاقت راوی دقت بود و نه اینکه اگه امر مجبور، ولی اینکه ما امر اشتمالی داریم شبیه خبر می‌دیم من میرم خبر می‌دیم اگر بنا به خبر سقه عمل نکنیم جامعه در کشوار میفتیم یا اصلا ممکنه جامعه اختلال پیدا کنه دو تا اختلال حسرا هر ازش تره مسئله اختلال نظام سنگینتره نه اینکه که در خود وقت کنیم وصاقت راوی نیست مجبولم نیست مبهمم نیست اینم سروش اینه اصولا هجی یک قدیده اجتماعیست در قدیده های اجتماعی به زاد نگاه نمی کنه. در احکام عقلی به ذات نگاه میکنن مثلا میگن ظلم قبیحه اون ذات ظلم اون ذات ظلم قبیحه شما هر نهی ظلم رو مثلا تصور بکنید قبیحه اون به ذاتش نگاه میکنن اما در سیر اجتماعی جامعه رو نگاه میکنن هدف اصلیشون اون جامعه از حفظ جامعه است اساساً جامعه اون روابطی است که بین اجزا بین افراد اصولاً این اعتقاد هست که هیئت اجتماعی یک احکام خاص خودش رو داره غیر از افراد توی بحث اقتصادی این هست بعضی این تصوره رو مثلا مثلاً سعادت افراد سعادت جامعه رو میاد این تفکرات تند سرمایه و کاپیتالیستی این دیگه سعاد... یعنی اگر ما در جامعه سعی کنیم تمام افراد تک تک افراد مثلاً خوشبخت باشن و از خوب باشه اون جامعه هم خوبه. اونم میخواد بگه نه، ممکنه تک تک افراد خوب باشن. غیر از تک تک افراد، هیئت اجتماعی هم حکم خاصی داره. اینطور نیست که هیئت اجتماعی یک امر وهمی و انتزاعی باشه، خوب دقت بکنید. اصلاً اون حکم داره. ممکنه تک تک افراد وزنشون خوب باشه اما هیئت اجتماعی خوب نباشه، رابطه اجتماعی خوب نباشه. مثال خیلی بارزه مثلا دیوار ممکنه تمام آجرهایی که در اینجا به کار برده شده باشه بسیار نوع خوبی باشه اما کج گذاشته یعنی جلو بری جایی دیوار صاف نیست جامعه مثل دیوار یعنی هیئت اجتماعی هم خودش حکم داره در مقابل این تفکر تفکرات کمونیستی است که میگه ما اصلا به افراد کار نداره اون هیئت اجتماعی رو میخواد یک کسی بیاد نگاه که مثلا در هیئت اجتماعی وضع ظاهری آرام همین خوبه حالا مفرد تک تک اینم انصافا باطله مثل اینکه یک دیوار سابی درست کرد اما تمام مثلا جنس آجراش از مثلا چی باشه از خاک باشه مثلا از فرض کاه باشه مثلا از فرض کردن خاکستر باشه خب این دیوارم استحکام نذاره دقت می‌کنید این بحثی بحث فی نفسه بحث درستی است هیئت اجتماعی معروض یک ایده از احکام هیئت اجتماعی انتظاری نیست هیئت اجتماعی وهمی نیست خیالی نیست خود هیئت اجتماعی به ما یه حیعت اجتماعی خودش خوب داره. یعنی غیر از اینکه شما دیوار رو میخواییم درست بکنین تک تک آجرها رو درست باید انتخاب بکنین آجرها رو خوب بگذارین باز بعدش هم رابطه آجرها باید سالم باشه یه رابطه مستقیم بین اینها جا بگوین تا دیوار بشه صاف غیر دیوار دیوار کجما واج میشه تازه این دیوار هم جای خودش داره پنجره جای خودش داره پنجره رو شما به سخت بذارید دیوار رو خب اتو... اتو... اتو... سافتمان به هم میخورد پس ما یک هیئت اجتماعی هم داریم لذا در سیر اغلایی ذاتش و واقعش همون احکام اقلیه اما این احکام اقلیه رو تجلی دادن در هیئت اجتماعی این نکته خاص وقتی شما صحبت از حجیت میکنید خبر ثقه حجه این حجیت عارض شده بر هیئت اجتماعی تحلیل اصولیش اینه شما اگر در یک کوه در یک غار تنها زندگی کنید، اصلا کاری به حجیت نداری چه جور حلال حجیت یک پدیده اجتماعی است چرا از جامعه درز شده این تفکر میگه شما اگر به خبر واحد اعتماد نکنید به علم محبول اعتماد نکنین دیگه هر زخه رو دارن نگاه بکنن اون زندگی به هم نخوره اون هییت اجتماعی به هم میخواد به تییت کو. اگر اگر تنها باشین به خبرواحل الان نکن هیچ مشکل دون نکن به خبر سره خیلی هم سری آدم بسیار خوب مشکل ندار. یک آب برای شما تو کوه تو ق آب خوب نخوره از میش فتون مینوید مشکل درسته میکنه که. خبر س دیگر از روشن شد موجیه حجیتی که برای خبر ثقه میاد حفظ هیئت اجتماعی و سلامت جامعه است اگر این حجیت رو برداریم یا فسرو هرج لازم میاد یا اختلال نظام این پس ما حجیت رو خوب دقت این تحلیل لطیفی است روش فکر من امروز در هست کردم که در کل و فقه به درد شما میخورد خورده اصول سیر غیر از احکام اوغلاییه غیر از احکام عقلیه با تحلیل بکنیم که آیا یک یک سیره مبهمی است که نمیفهمیم دو یک سیره معلومی است که ما چون جز او هستیم تحلیل میتونیم بکنیم در مقام تحلیل آیا این سیره منعقد شده به یک نقطه درونی یا این سیره برپا شده به خاطر یک نقطه برونی اگر نقطه برونی شد نتیجهش چی میشه میشه متغیر مثلا اگر جامعه الان در اثر کامپیوتر و اینترنت و این امکان ارتباطات ما زیاد شد، هر ما ارتباطات ما ارتباطاتمون زیاد بشه دیگه به تعباد رو نمیاریم <تصحیح> <تصحیح> نمیگیم خبری تعبادن تعبدن حجه فرض کنید امکان دسترسی به هر قانونی که تصویر شما با یک لحظه با کامپیوتر وارد مثلا سایت مجلس بشیم می‌فریم قانون هست نه دیگه شما به روزنامه نگاه نمی‌کنید شما برای فهمیدن قانون به مثلا به ا به استانداری مراجعه نمی‌کنید خودتون خب از مجلس میگیم اگر خود شما به خبر رسانه عمل نکردین دیگه اختلال لازم نمیاد دیگه عصب لازم نمیاد این فرقش با اون وجود قبلیشون یعنی این میاد میگه شما به خبر رسانه عمل کن جایی که اگر نکردی عصب میاد اگر در علم شرکت کرد سنعت پیشرفت کرد بعض اجتماع عوض شد 80 درصد اون تو مستقیم مراجعه بکنید کاری به خبر کااه های صل توی بیست درصد ع لازم نمیان توی بیست درصد هرش لازم نمیان توی 20 درصد اختداال روشن شد؟ شما ازا مراجعه نکنید خبرسه هم تو بیست درصد عمل نکنید. هیچ بشکلی برای شما تولیدده میکن. این نکته های فن پک چهار احتمال ما در سییر می میرییم بیا این تو مانحن بیاین مثال ماناحنافی. این اسات سر هم این همینطور این که شما حکم میکنید این آقا خرید و فروشی صحیحه، عقد صحیحه، نکاح صحیحه، طلاق صحیحه، چار احتمال هست. یک این هم باشه ما سر در نمیاریم. نقش ما یک نقش انفواالیست، نمیدونیم چرا، میدونیم اوغلا داره. نکتهش هم قابل تحلیل نیست. یک امره که ما اون رو قبول این احتمال اوله. لكن با این بیاناتی که من عرض ما اصولا سیر و رو قابل حل و فصل میدونیم چون سیر اوغلایی رکن اساسیش اینه که باید تو جامعه روش عمل انجام بگیره یا کلام یا عمل یعنی یک نوع مبادله یک نوع تقابل باشه یک نوع تفهیم و تفهیم باشه یک نوع اخزارت باشه اقساطها باشه بده و باشه و ما هم جزء این طرف هستیم یعنی ما وجود ما چیزی نیست که خارج باشیم بگیم یک امر مستقل و لزوم مبنای اول به طور کلی پیش شما باطله این مبنا که سیره اوغلایی رو ما سر در نمیاریم شش رو باید ببندیم میگه نو تعبدیه نرخ سیره اوغلای تا ما هم انجام ندیم سیره نمیشه تا ما هم تو جامعه تفهیم و تفاهم نکنیم سیره نمیشه و رضا بالاتر از این اگه یک سیره ای بود که 30 درصد در جامعه انجام میدن. باز هم کافی نیست باید یک نوع ظهور یک نوع ظهور تو جامعه پیدا بکنه و ماها اینطور نیست که کارهامون مجهول و مجمل و راز و غمزدار باشه اقدامات ما اساس داره زیر علمی خوفی در کار نیست پس این ابحام و این احتمال بسیار بعیده احتمال دوم بگیم این سیره و کار ندارن فقط میبینن مردم فیلم ها و عمل به چیز دیگه نگاه نمی کن. احتمال سبر بگیم نه به این نکته نیست یک ای دارن که چون مردم آقلن و چون مردم دنبال ترتیب اصلا این جهت. حتما یک عقد سعیه انجام میدن نکته چارو بگیم نه اصلا این کار کردن به خاطر اختلال نظام نکته بیرونی اصلا نکته درونی نداره شون علم ندارن که این معامله سیانه بخوام برن علم فیزوکه زندگیشون با مهوری و اسره هرجو اختلال می وقتی این نتیجهش اینه که اگر جامعه پیشرفت کرد کن فرض کنید یک جامعه ای که شما رفتیم بازار هر چی خریدین تو کامپیوتر ثبت شده هر چی فروختین ثبت شده همه معیاره دیگه احتیاج به اعصالات و صحه ندارن دیگه وقتی همه بیان بشه دقت کردین وقتی همه بیان بشه اصل دیگه نکته رجوع به اصل نیست اینی که در روایات ما آمده در زمان است محلی صاحب الله علیه نیازی به بیانه نیست بیانه بشه نیازن باشه اصول دوتایه با قولا نیازی به بیانه نیست و اصول یعنی دیگه جامعه اینقدر از نظر اطلاع و آگاهی میره بالا دیگه جای ابهام نداره که با اصول درست بکنه یا <محن> حتی بیانه بیانه امور فی نفسها واضح میشه نحوه تعامل بر اثر پیشرفت علم و صنعت و جواات دیگه به می میرسه که نیازی به این امور تعبدی پیدا نمیکنه بعضی روایت ما داره که مثلا رسول الله یک قول و مهدی سلام الله علیه البته این سنن رو ساخته شدن چون اینا که پیغمبر اکرم حضرت مری از پیغمبرم مثلا افضل هست اشتباهه خب پیغمبر میفرما رو ما و بعضی گون الهم و ان ما عذی بینکم به ایمان والله خود پیغمبر در روابین افضلیت امام زمان این جامعه هست این مرمی به شخص نیست امام میخوان بفرموان در زمان مهدیس آقلاله جامعه اینقدر پیشرفت میکنه که نه نیاز به بیانه هست نه نیاز, یعنی نیاز به یمین هست یعنی نه اصول جاری میشه نه امارات جاری میشه انسان میتونه خیلی و واضح به لب مطلب برسه یعنی به عبارت اخرا این سیر و اغلایی خواهی خود به خود از بین خواهد رفت دیگه و چون موضوع رو پیدا نیم کنه حجیت خبر سقه موضوع پیدا نمی کنه وقتی مطلب بش رسیدین که حجیت خبر سقه موضوع پیدا نمی کنه تمام این سیره اغلاییه که ما الان داریم اینا نسبی هست اینا به جامعه ها فرمی کنن طبقی این تصابق درست هم هست حالا کده می که از این سه احتمال دیگه فردا انشالله توضیح هست و الله علی محمد شو لازمه ای داره آه. که مثلا عقلا میگه نه چون آقله این میگه نه چون آقله و بنا بود رو این من منشأ شده یک نوع قرینه حالیه و سیاقیه هست به احتمال داره حالا من اعتراضو چی میگه چهار شما رفتین که چهارو میبیشین احتمال داره چه؟ احتمال دوم است اینطور تو خبر باهات تفگودش امتحان نبود. احتمال دوم فقط وسعته را میگی نقطه چیه وسعت؟ نقطه وقتی احتمال سوم میگه نه. موسیقی. اگه عالی باشه همه وسعت میشوند.